الحمد لله رب العالمين الصراط والسلام على اشرف الانبیائی و المرسلين المرسلین وصحبه اجمعين و صحبه اما بعد چارمین ذکری که در صبحگاه و شامگاه گفته میشه این ستا ذکری که گفتیم آیت الكرسی و معوزات و این حمد و ستایش هم سبگاه هم شامگاه فعلا از کاری هستیم که هم در صبحگاه گفته میشه هم در شامگاه چارمین ذکر حدیث ابان بن عثمانه نجازة سونا من عفال شنيدة كلا سونا سونا شنين مفرميان ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة كسينسك نسك صبقه وشامقه شنين بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبار لم يضرره شيء كسي انذكره بقيه چیزی باش زرار نميرس يعني الله كفاة تتميكنا از انك الزرار بيدنا لسه آسيه بيدنا ميرسه اگر انذكره قفتي بسم الله الذي لا يضرر مع بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نام الله وبطاعته ما قدر بكلي بسم الله مثلا بسم الله آكل بسم الله ميخره در خوردن يا الله ازر ميخواهم كه خير و بركات درش بندازي بسم الله اذبح مثلا وقتي كه داريم ميکنيم بسم الله ميکون يعني, بس مي مي يعني يا الله ذبح إن جا كل امورته رب الله ميسپاريم بسم الله الذي بنامته تو الله الذي لا يضر مع اسمه اسهر زدن الله بتپناه ميبرام به نام تو که در مقابلش هر زرنی نابود میشه لا یا در رو اسمی میشی نامش یاد بشه اون ذره رو آسیب بهت نمیرسه قدیما به ما یاد میدادن مگه صحرای جای رفتی اگه از صدایی چیزی شنید ترسیدی بگو بسم الله که جنیان فرار میکنن راست گفتن قدیما نام الله که در مقابلش جنیان ازش فرار میکنن نام الله بسم الله برای موحد مؤمن موحد نبره هرکس آتشی که برپا کردن جهنمی که در دنیا برای ابراهیم ساختن گلستان شد برای ابراهیم چون موحد بود ولی تو را اگر توش بندازن هنوز نرسیده فکرم از همون آخر تبخیر بشی از اون آتشی که برای ابراهیم پا کردن توحید ما کجا توحید ابراهیم کجا توحید ما تعظیم ما نسبت به الله مثل ابراهیم علیه السلام درسته؟ این اسم الله هست. اسم الله اگر حقش ادا بشه حق توحیدش ادا بشه حق عزمتش تحميد وتكبير الله اكبر وكبيره وانت عزيمش وانت که شايستاش هست و اون تقديري كه بواد بشه اگر حق و شايستگيش به بیاری بله اونجا هست لا يضر مع اسمه هنيها امراه اسم الله شيء هيچ چيزي بهت آسیب نميرسونه اسم الله بيات الله سفر در مقابل دشمنانت الله رو داري اي مؤمن موحد نترس خلق خدا تمامي مخلوقات جن و انس بشند به ضرري برسونن تو الله رو الله نوشته باشه آسیب به میرسه ولی در غیر این صورت خلائق جنب بشن نمیتونن بهت آسیب برسونن لا یضر مع اسمی شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السميع العليم ما کوی کلمه الله بود یه طرف فضیلتش این چنین عمل میکنه در مقابل زرار این چنین عمل میکنه در مقابل زرار لا یضر مع اسمي از طرف دیگر بحث اینه که چرا این چنین عمل میکنه به خاطر این کلمه الله الله خودش عظیمه کلماتش هم عظیمه از ازکار سبگاه شامگاه چی داریم؟ اعوذو به کلمات الله پناه میبرن به کلماتت چیه قرآنش؟ کلماتی گفتیم معوضات رو بر شخصی که جادو شده تلس شده جنیان اومدن دست پاشو بستن تلس مشکردن اون قفلها رو تو میشکری با چی؟ کلمات الله چقدر الله عظیمه؟ اسمشه، نامشه، کلماتش که در مقابل شر نابود میشه ولی یقین میخواد ادعو الله و انتم مو قنون بالعجابة و هو السمیع العلیم الله میشنود سمیع الله <تصفيق> علیم است میداند ذکری داری میگی الله راد داری میگی بر سر زبان میاری الله در صدات میشنبه و علیم از قلبتم آگاهه که این از دل میگی موحدی یا نه فقط سر زبانی از ترس گفتی از محبت و ترس بود نا بخاطر همین این ذکر آخرش. مرتبط شد یا مقترن شد یا آخرش خط شد به این دو وصف الله سمیع و علیم تویی که میگی این اسم الله آگاهه و میشنه صدایت و میداند از آنچه که در قلب توست آیا حق عظمت الله را به جای اووردی یا نه تهمیدید که ربط این ذکر اون مقام و استجابت دعایت ذکر پنجوم یا حی و یا قیوم برحمت که استغیف اصلح لی شعنی کله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين حدث انس بن مالكه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدوخترش فاطمه رضي الله عنها شنو ما يمنعك أن تسمعي ما اوصيكي ما اوصيكي به من وصيتك يقول انا نصيحتها داري بنت دخترش يجي كوش بده شيء اللي يخام بده بگم كصبحگاه وشامگاه اي ذكرو بگی انچيه توصيه توصيه يكي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدوخترش وبرای امتش یاد بگیرن چنانچه اینجا رسول الله ص یاد میدن به ایشون و ادس هم که یاد بگیره و دیگر اصحاب یاران رسول الله یاد بگیرن یا حی و یا قیوم حی قیوم مقابلا داشتی در آیه الکرسی بر رحمتک استغیث استغاثه کمک گرفتن پناه بردن پناه میبرن به رحمتت رحمت و وسعت كل الله رحیم رحمان پناه میبرن به رحمتت پروردگارا اصلح لی شانی كله تمام امورم رو خودت درست کن نفیه چیه نفی توفیق از خودت مایی که الان اینجا نشستیم توفیق الهی بود نگیم از زحمت ما بود نگیم تلاش ما بود نگیم ما تونستیم ما کردیم نه اون کسی که تو را اینجا آورد الله بود اون کسی که تو را نجات داد از اینکه الان مشروب ننوشی سر سفره خوک ننشینی و گوشت خوک را نخوری و گوشت سگ را نخوری از اون امت گمراه نباشی کی بود الله مصطحق شکر یا ن سحق شکر سپاس و ستایش الله همه امورت را باید از الله به اصل لیشه این که در خود دیدی پر از الله کمک میتلبی پروردگار را پس تمامی امورم را خودت درست کن درست کردن امور دست خودت وقتی که تو آثار نعمت را در خود دیدی این اصلاحی که در خودت کار خوبی که در خودت میبینی از خدا دیدی تمامی خوبی هات را از خدا میطلبی پروردگار همون که اینجا به من توفیق دادی آینده را خوب قرار بده برای توفیق بده و مرا خودم نسبار و لا تکلنی الی نفسی طرفت یک چشم به هم زدن مرا خودم نسبار سبحان الله یکی از علت گمراهی های انسان غرور و کبره خودبینی و خودپسندیه من اینطوری میبینم من میفهمم یعنی هیچ کسی نمیفهم فقط خودش میفهمه من اینطوری نمیدونم می میبینم من فلانم همش از خودش میبینه من این قد کتاب خوندم من این قد قرآن میخونم خوندی که خوندی چرا به رخ مردم میکشی بین تو هستو خدا چرا ریاکاری میکنی من این قد حدیث خوندم من این قد سواد دارم من دکترا دارم من پروفسورا دارم من نمیدونم فلانه من این قد زحمت کشیدم کشیدی کشیدی این نو صحبت کردن این نوع خطاب و این نوع خودبینی و خودپسندی علت گمراهی است بخاطر همین کسانی که در امت به گمراهی کشاند نشود فکر نکنید از نقص عقل بود مثل ابن سینا بود دکتری بود فرغیده‌ای بود در زمان خودش پزشکی معروفی بود همچنانم کتاب پزشکی شفاش تدریس میشه ولی گمراهی در اعتقاد و توحید بود خدا را قبول نداشت حتی متکلمین اونایی که اهل فلسفه و کلام بودن مثل از غزالی میاد تفیریش میکنه. بحث الان نیست چون معاد را انکار میکنه ابن سینا میگه معادی نیست اصلاً کی گفته اثر روز قیامتی هست و آخرتی هست نیست چه چیزی سبب شد که ابن بیاد آخرت را انکار میکنه؟ عقلش میگه با عقل من جور در نمیاد. این پرستش عقله. این بالاتر دونستن عقل بر نفس. وقتی که تو خود رأی و خود پسند و خود خواه و خود بین شدی دیگه رأی خدا رو را نمی پسندی. یاد تعنه در اجماع میزنی. اجماعی نیست. او بکر و عمر اصلا اجماع رو خلافتشون نبوده. اصلا نیست. همینطوری اومدن. اجماع رو قبول نداری انکار اجماع بريد برای طعن در صحابه و یاران رسول الله اشتباه کردن عثمان انتخاب کردن اشتباه کردن عمر انتخاب کردن اش مو ما اهل سنت چرا میگیم خلیفه اولمون ابوبکر چرا میگیم خلیفه دوممون عمره خليفة سوم عثمان و خلیفه من عالية میگیم اجماع اتفاقه نه با کسی مخالفت بکنه هر کسی مخالفت بکنه سنی قرآن وما من رسول من بعد ما تبین الله الهدى و سبيل المؤمنين راه مؤمنين چنین الله میگه کسی که راه مؤمنین را نگیره چی میشه نو متوله و نصلیه جهنم و ساعت مسکره این راه راه می میبینیم این راه جهنمیانه اهل جهنمه نمیام راه غیر از اون مؤمنینی که اومده در قرآن بگیریم اون مؤمنین اتفاق نظر کردن سنت پیامبر رو بر سر چش میذاریم میگیم حدیث رسول الله بر سر چش نمیگه با عقل ما با زمانه ما جور در نمیاد تعنه در فکر خودمون اندیشه خودمون میزنیم ولی نه در رسول الله و در سخنانش و افعالش میگیم رسول الله صلی الله علیه و وسلم الله ناظر بر افعالش بود یک اخمی در چهره نابینایی که ندید الله است پیامبرش نفذیرف آیه را نازل میکنه ابس و تولا ان جاءه لعم چرا سوره تطاریق کردی وقتی که نابینا اومد انکار و نکوهش میکنه بر پیامبرش اون نابینا هم ندید ندید چهره رسول الله صلی الله علیه و سلم اون وقتی که عبوس شد اخ کرد یک عیب یک نقص یک اشتباهی که شخص ندیده اگر میدید یه چیز ندیده اون نابینا ولی بازم الله میخواد به بندگانش بگه اینم از پیامبرمون نمیپسندیم اینم مورد قبول نیست با اونجیک اون طرف نابینا هست بعد رسول بیاد اشتباه میکنه در عبادتش، طاعتش، ذکرش میگه الله نمیگه الله یصفی استفا کرده اشتباه کرده انتخاب کرده پیامبرانش رسولش اگر انتخاب شده خدا خداوند تو چطور موقع اجازه میدی بر انتخاب خدا اعتراض وارد بکنی و همچنین هم اعتراض بر قرآن خدا نه این قرآن معانی مختلفی داره نمیتونیم از قرآن حکمی ثابت و قطعی برداشت کنیم اگر نمیتونیم حکم ثابت و قطعی برداشت کنیم پس شما چرا میاد روی خوارج انکار میکنید مشکلتون با خوارج چیه خوارج استدلالشون به قرآن ما من لم انزل الله فولئک هم الكافرون کسی که حکم خدا را اجرا نکنه کافره زن صحابی حامل بود کشتنش به بچه‌ش هم رح نکردن. چقدر از اومدن به صحابه و یاران رسول الله کشتن پس کار و حق بود قرآنه دلیلش هم قرآنه ان الحكم الا لله اومدن عثمان را کشتن به شهادت رسوندن اومدن علی را هم کشتن به شهادت رسوندن قرآنه معانی مختلفی در بر میگیره هیچ مشکلی نیست بزن همین دیگه رو بکشید درسته این کار این روش درسته مسندیده است نه الله انحراف والله قرآن نیست این, فهم... این فهمی که اینها دارن قرآن این نمیگه قرآن کجا گفته مؤمن رو بکشت قرآن میگه کسی که یک مؤمن رو بکشه مثل که همه مردم رو کشته قرآن مانع تکفیر تو آیاتی که در شعن یهوده اومدید در شعن مسلمان ها مقال معروف تطبیقش دادی هرچنکه اگر هم قبول بکنیم که ما تبری رحمه الله نیکی این در شعن اهل کتابه العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عبره بعموم اللفظه بالفارس ما بيج برهمه اشخاص ان قضيه صادر مشي اي هر كسي حكم بغير ما أنزل الله كان ان حكم الله راجله كان يجمع سياتر انجاب دات هر كسي كافر كفرش أكبر مخرج بالله ابن عباس رد قال هم يكي. ليس الكفر الذي بتخارج لي ليس الكفر الذي تذهبون إليه بل هو كفر دون كفر إن كفر دون كفر چرا كفر دون كفر چون خداوند در قرآآن میگوید جای دیگر ان الله لا یغفر انیشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن الله شرک اکبر را نمیبخشه هیچ وقت ولی که ما دون شرک اکبر را میبخشه ما کفر و شرک اکبر داریم اصغر داریم قرار بر این نیست که هر کسی کفری انجام داد کافر بشه معاذ سجده میکنه یا اون شخصی که یاد میکنه از شدت خوشحالی اومد گفت اللهم انت عبدی وانا ربک کفر کافر شد باید شرایط و احوال و اینا باید نگاه بشه نمیتونیم تطبیق بدیم مستقیم بگیم این آیه اینطوری گفته پس خلاص هر کسی فلان کرد کافره نجاشی نتونست حکم منزل الله بکنه کافر شد نتونست اعلام اسلامش حتی بکنه رسولا یارانش گفت بیاد بر نجاشی نماز بخونید قد توفی لکم بالحبشه در حبشه برادری از شما فوت شده اسمش نجاشی بیا نماز قایم بخونیم کسی نبود کس که روش نماز بکنه. هیچ کسی که ایمان آورده اصلا مسلمونه رسولا نماز برش خورد چرا این آیه رو تطبیق نمیتونیم بدیم بر نجاشی چون معذور بود نجاشی پس قرآن را باید با توجه به چی فهم رسول الله و اصحاب و یارانش فهمید از درش وارد بشیم آیاتی در قرآن محکمه و آیاتی متشابه اون که متشابهه معنای قطعیشو نمیتونیم برداشت بکنیم وظیفه‌مون به اهل علم رجوع بکنیم خوارج وظیفه‌شون بود که بیان پیش ابن عباس بگن شما چی از رسول الله فهمید مقابل این نیومدن عاقبتشون چی شد کشت کشتار و خونریزی عاقبت اینایی که دم از قرآن میزنن میگن ما قرآنی هستیم عاقبتشون رو هم همین میبینید که همدیگر رو بکشن بر سر قدرت لویی و همین کارم که دارم میکنم بر, بر با امت هر جایی خون و خونریزی میکنید به خاطر عدم پایبندی به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و عدم پیروی از راه و روش اصحاب یاران رسول الله صلی الله عليه و سلم ششومین ذکر. عن <تصفيق> <أني> أبي هريرة رضي الله عنه أن أباكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت كلماتي بما بقو كسبقوه شامقوه بقام أو باك الصديق من جبر الله الله قال قل بقو فرمود رسول بقو اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشر الشيطان وشركه وشركه, وشركه بفتح شين وراء قال قولها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مجمعين ذكر بهن قام شبقا شامجا بهن هم ذكر خابم هذب. اللهم فاطر السماوات والأرض. اللهم فاطر السماوات فاطر الله يعني خالقه مبدعه موجده يعني الله جل شأنه تمامية مخلوقات راق فريدة مخلوقات هر چیزی که می‌بینی در آفرینش آفریننده مطلق آنها به تک و تنهایی که الله. اللهم فاتر السماوات والارض. اینا اقرار به جلال و عظمتشه. یعنی مخلوقات عظیمی که می‌بینیم اینچنين ایجاد شدن، به نان گفته میشه نانی که پخته میشه میگن فتیر تازه هست. پخته شده، ساخته شده. کلمه اصل اشتقاق کلمه فاتر از اینه. هرچند که به معنای شکاف هم میاد. ولی خب اینجا به معنای ایجاده. یعنی اقرار به این که به وجود آورنده موجودات متل... مطلقیه الله یک اللهم فاطر السماوات والأرض خالق آفریدگار آسمانها و زمین عالم الغیب والشهاده عالم غیب گفته شده آخرت که ما ندیدیم گفته شده اون چیزی که در علم خدا هست در آینده که میاد ما ندیدیم گفته شده عالم غیب، عالم سر، پنهان هر چیزی که پنهان ما میگیم شامل میشه عالم غیب هر چیزی عالم پنهانه برای ما پنهانه و برای الله آشکاره الله عالمه به آن چیزی که پنهانه و به آن چیزی که آشکاره و شهاده گفته سه آن چیزی که الان رخ میده و آن چیزی که مشهود دیده میشه یا آن چیزی که حاضره همه چیز شامل میشه هر چیزی که وجود داره و هر چیزی که در پنهانه یعنی آشکار و پنهانش الله به اون عالمه رب كل شیء و مالکه پروردگار هر چیزی همه چیز همه چیزها چیز و مالک اونها الله خالق آفریننده است و مالکه همه همه ما در تصرف ملک اللهی به خاطر همین ما نمیتونیم کلیه خودمون رو بفروشیم چون مالکش نیستیم ما خودمون مالک نمیتونیم خودکشی بکنی تنا بزنیم خودکشی بکنی گناهی که الله نمیبخشه چیه خودکشیه چرا خیلی خودکشی میکنم به خاطر ایمان مشکل در ایمانشون ندارم صحابی را دیدن گفتم فلانی شهید شده گفت نه واسو فند نشده جهنمیه صحابت تعجب کردند نیزر ما خودمون تو جنگ تو سینش ببینیم گفت که نه جهنمیه تو جنگ تو معرکه شهید شده نیزه تو سینه شده یا رسولا گفت نه نیزه تو شکمش رفته بود ولی او را نکشته بود خودش فشار داد خودشو کشت تیر خلاص را خودش زد جهنمی شد عجله کرد با دست خودش بسید مرگ شتافت تو مالک خودت نیستی حق کشتن خودتو نداری حق فروختن اعضای خودتو نداری حرامه چرا؟ چون مالک اون کیه؟ مالک اون الله حق داری رو بدن ادخالکوبی کنی؟ نداری. چرا؟ چون مالکش نیستی. حق نداری حق نداره زن ابروشو برداره. چرا؟ چون مالکش نیست. الله نمیخواد اون چهره ای که ساخته عوض بشه. الله بهترین صورت ها رو به ما داده. تغییرش تغییر اون ابرو یعنی عدم رضایت به خلق الهی. ریش را الله بر مرد پسندیده به گذاشته. میزننش، میتراشنش. یعنی چی؟ يعني عدم الرضاية بالخلق الهي بالتصوير الهي لا يقول الله هو المصور الله يقول مصور ليس لماذا لماذا؟ لماذا در قرآن فقط يقول فأحسن صوركم شما ربما بهترينها بهترين شهرها آفرين فشرا عملش نميكوين در زندگي انا كهس من ميقم تأثير معناي اذكار در زندگي ما أشهد أن لا إله إلا أنت شهادات قواه بربحدانيات وإن كان الله معبود بحق يكتاس ع او ب کمم نفسی من از شرل نفسم به تو پنا می برم. رس اصلم چین نمی گفت. یا مقام تعلمیم یا مقام ثباته ینی اینکه رسول ها ترس داشت از اینکه شاید لغزشی براش پیش بیاد هم تو همطور که در دعای دیگرش الله یا مثبت متابققول مثبت قلب عدینک دینک میترسید همونطور براهیم می ترسید یک مقام ترس لغزش شاید پیش بیاد نه مده وله شاید پیش بیاد پس از الان مخمش میکن پربردگان را ثابت می کنیم. مرا به خودم مسوار. پناه میبرم برودگار را از شر نفسم. از اینکه نفسم تمعم هوا و هبسم مرا گمراه بکنه. علاوه بر اینکه میشرر نفسی. هوا و هبس تمع زيبا زیر چشم تو دختری رو میبینی میخوای بهش نزدیک بشی یا میخوای باهاش صحبت بکنی یا همون طرف مقابل زنم هم اینطور میخواد تو جامعه زیبا جلوه داده بشه که قشنگی زیبایی موهاش بیرون میکنه عورتش جساش بیرون میکنه آسینکوتا میپوشه هواي نفسه طبيعي هواي نفسه شو زين سبب جبرويش مش است استقامتش از بميره اعوذ بك من شر النفس بواط پناه ببريم از شر نفس وقتي كه نفس اينطوري ما رو در هلاك و هلاكت ميندازه و وشر شر الشيطان و شركه و شر شيطان و شركش و شر الشيطان و شركه در روايت شركي شرك بواط كسر الشين. شرك معروفه شرك شركه به وانده ونده رب را الله قرار بديم در عبادت و طاعت شركه شرك یعنی ریسمان ها تنابه شیطان حوائل شیطان کمینگاه های شیطان پناه ببریم از هر کمینی که شیطان برای ما گذاشته پوردگار از هر کمین شیطانی به تو پناه میبرم کمینه در گناه گذاشته برای ما کمینه در مقابل الان دوناها مختلفن. هست بی حجابی و بی بندواری و همه اینها از بی نمازی همه شامل میشه در بدعت ها هست انواع بدعت ها و چه بدعتای اعتقادی چه بدعتای رفتاری همه چیز شرک بدتر از اونها یعنی همه اینها شامل میشه شرکی هی. هر کمینی که شیطان برای ما گذاشته پروردگار از هر کمینش از شرک و کفر و معصیت و گناه و بدعت پروردگارا را به تو پناه می‌بریم ها قلها اذا اسبحت این رو بگو به هنگام صبحگاه و شامگاه نکنه در دعاها خصوص از اینجا به بعد ما تکرار داریم یعنی مثلا اینجا داریم اللهم اللهم تکرار میشه اللهم یا ندا هست یا الله در هست یا ای, ای الله از باب احترام تجلیل یا حس شده میم اضافه شده دیگه گفته نمیشه هیچ وقت یا اللهم فقط گفته میشه چی اللهم یعنی یا الله این صدا زدن الله که همیشه او را باید این اینجوری صدا بزنیم اللهم هرچند که الله در بحث قرآن ما هم ربنا داریم هم اللهم داریم که ربانا هم شاید بیشتر در قرآن تکرار شده باشه خصوصا در دعاهای انبیا چون مقام مقام احتقار به درگاه الهی هست یعنی بحث مقام عبودیت ابراز بندگی یه طرف بحث اقرار به عظمت الله هم طرف دیگر چون مقام مقام سوال و کمک و نیاز دست نیاز داریم بلند میکنیم اینجا مقام به اقرار به ربوبیت خداوند و خالق بودن خداوند و آفریننده بودنش نزدیک و و بخاطر همین دعاهای پیامبران اگر ما دقت بپیم تو قرآن با ربنا شروع شد ربنا آتنا دنیا حسنا و فالآخرت حسنا یا رب حبلی من لدن که همه رب و ربنا آمده ولی خب گفتم فرقی نداره در مقام عبادت چه اللهم گفته بشه و چه ربنا سبحانه کالله محمد کسان محمد و علا محمد